مسئولان فرهنگی باید مراقب رخنه, رخنه فرهنگی باشند. رخنه باشن. باشن. های فرهنگی بسیار خطرناک است باید حساس باشن یک سوالی اینجا ممکنه مطرح بشه بگم خب شما میگید حساس باشن مسئولین کشور چقدر حساس باشن آیا این با آزادی که از شعارهای انقلاب است و جز پایه های جمهوری اسلامی است منافاتی ندارد بخیر با آزادی هیچ منافاتی ندارد آزادی غیر از ولنگاری است آزادی غیر از راهسازی همه ضابطه هاست آزادی که نعمت بزرگ الهی خودش دارای ضابطه است بدون ضابطه آزادی معنی ندارد اگر چنانچه کسانی هستند در کشور که برای تیشه ریشه ایمان جوانان زدن دارن تلاش میکنن نمیشه این را تماشا کرد به عنوان اینکه این, این آزادی است همچنانی که اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد بین این آن توضیح کنه نمیشه بی تفاوت نشست نمیشه بی تفاوت نشست ببینیم کسانی با استفاده از هنر با استفاده از بیان با استفاده از ابزارهای گوناگون با استفاده از پول راه مردم رو بزنند ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن در فرهنگ اسلامی و انقلابی مردم رخنه ایجاد کنند ما به تماشا کنیم بگیم که آزادی است این آزادی در هیچ جای دنیا نیست فرهنگ یک کشور مثل هواست اگر این هوا تمیز باشد آثاری دارد در بدن شما اگر این هوا کسیف باشد آثار دیگری دارد